جلسه پنجه و قواعد فقه سیاسه هجده دوه هزار چارسد و یک محسسه امام رضا علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الله علی سیدنا و نبینا القاسم محمد و اهل بیت طاهرین المعصوم سیه الله روحی و عرباه له لخول با تأکید بر خدای متعال و توسل به پیامبر گرامی و اهل بیت اطهار علیهم السلام بحث قاعده تقدیم حفظ دین بر حفظ نفس رو تکمیل می‌کنه بحث حفظ دین و حفظ نفس رو خب اجمالا مفهومش خوب روشنه و اشاره‌ای کردیم مفاد قاعده رو این مقداری مورد اشاره قرار دادیم و اینکه شکل‌های مختلفی داره بعضی پیش نیازها رو برجسته کردیم برای اینکه که مقداری مقوله شفاف بشه خب هم حفظ دین هم حفظ نفس مسادیق مختلفی دارن یکی از مسائل مهم اینه که وجه تقدیم حفظ نفس چیه گذشته از عدله خاص یا عامی که می توان برای در واقع تقدیم حفظ دین البته بگیم تقدیم مصلحت حالا محدود به حفظ نکنیم مصلحت نفس مصلحت دین اینجا نکته های مختلفی هستش عدله خاص و عام بر روایت و ادله عام این نکته رو عرض کنیم که قبلا مشابهش رو داشتیم بحث مفهوم منفعت هم اینجا نزدیکه از یه طرف ما گفتیم مصلحت دین سه عنوان براش بگیریم تأمین، رعایت، سیانت خب ممکنه توسع هم حساب کنیم حالا اون یه جوری باز تأمین، مصداق تأمین باشه اما یه مقوله مهمم به جای خود مصلحت مفهوم منفعت هم اینجا گایی قد پاش وسط خب این مفهوم رو چکار کنیم این کمک میکنه به اون در واقع فرض های ما و هم پیشفرض رو کمی شفاف میکنه پیشفرض هفتم ما اینه که مفهوم مصلحت مفهوم است که از مف... که متمایز از مفهوم منفعت در واقع نمیشه مفهوم مصلحت رو تقلیل داد خب در نتیجه نه میتوان مفهوم مصلحت رو تقلیل داد به مفهوم منفعت یا اینکه ما تحویل ببریم نمیتوان اون رو به مفهوم خلاصه منفعت تحویل برد چرا این دو تا رو می کنیم اگر اگر مفهوم در واقع اگر مفهوم منفعت محدودتر یا نازلتر از مفهوم مصلحت باشه نمیتوان این رو تقلیل داد اگر محدودتر یا نازلتر باشه چنان که اگر مفهوم منفعت مستقل و متمایز از متمایز مفهومی از مفهوم مفهوم مصلحت باشه نمی توان اون رو چکار کرد؟ نمی توان رو به مفهوم من تحویل برد خب پس دو تا مفهوم داریم به کار میبریم، یکی تقلیل یکی تحویل در واقع اگر محدودتر یا یکی نازلتر باشه، نازلتر اذیت ارزشیه اگر دایره مصداق ببخشید دایره مثداقی مفهوم منفعت رو ما لحاظ بکنیم فرصهای مختلفی است مفهوم منفعت میتواند به صورت در واقع عام و رابطه داشته باشه رابطه مفهومی منفعت به این گونه باشه که منوچ باشه خب در این صورت در این صورت خلاصه مفهوم برخی از مصادیق مصادیق مصلحت منفعت تلقی نمی و بلکه در واقع از مسادیق مفهوم زرر خواهند بود زرر یا خسران خواهند بود یا بگیم که خب اما قشن روشنه وقتی یک چیز مثلته دیگه من مفسده نیست حتی اقل مفسده قالب نیست اما نسبت مفهوم خلاصه اه بگیم مفهوم منفعت اگر آن باشه برخی از مصادیقش منفعت تلقی نمیشن و بلکه زرر خواهند بود درسته؟ از مصادیق مفهوم زرر خواهند بود یه مورد دیگه برعکس میشه در نظر بگیریم برخی از مصادیق در واقع مسلحت از مصادیق مفهوم منفعت خواه هستند خواهند بود این هم یک مورد برخیش برکس دیگه برخی از مصادیق مسلحت منفعت تلقی میشوند خب تلقی می شوند اولی گفته نیستند یه جایی بچه اشتراک دارن یه جایی هم حالا برعکس برخی از مسادیق منفعت از مسادیق مصلحت تلقی نمی‌شن یعنی منفعت هستند منفعت هستن ولی مصلحت نیستند خب در اولی مصلحت هست اما منفعت نیست بلکه از مسادیق ضرره اینجا برعکس برخی از مسادیق منفعت از مسادیق مصلحت نیستند یعنی امور خاص مدوج قرار تلقی بشن خب پس یه چیزی ما داریم در خارج مصلحت منفعت نیست یه جای منفعت داریم پس یه قید محققم می توانیم در نظر بگیریم فرض بگیریم در بیرون منفعت محققی داریم آیا این مصلحت خیر یه جایم مسلحت هست در مثلاق بیرونی مسلحته اما منفعت نیست نه در واقع لذا یک قید محقق در نظر بگیریم این معوله رو روشن میکنه خب پس بنابراین اون نتیجه گیری که داشتیم اگر اینجا الان فقط تمایز قائل شدیم اما ارزش گذاری مستقیم نکردیم اینجا ارزش گذاری به صورت غیر مستقیم بود لحاظ در واقع ضرری بودن یا خلاصه مفصده بودن ممکنه چی باشه نگاه خلاصه مفسد آمیز بودن رو ما به صورت برخی مصادیق میتوانه نگاه خلاصه ارزشگزارانه در واقع لحاظ و نگاه ارزشگزارانه تلقی بشه خب این مورد سوم منفعت بود اما مصلحت نبود بلکه میتوانه چی باشه؟ میتوانه از خلاصه ما از مسادی به مفسده تلقی شود خب پس اینجا الان پای مفسد آمد یه مقدر ازش گذاره کردیم پس در نتیجه مفهوم مصلحت و مفهومه مفسده اینن با منفعت و اینها یکی نیستن خب در نتیجه خلاصه ما اینطوری میتوانیم بگیم بالین اساس اگر دایره مصداقی مفهوم منفعت محدودتر از خلاصه مفهوم چی باشه یه جایی و چاشتراک داریم نمیتوانیم همه جا مفهوم مصلحت رو تقلید بدیم اگر مفهوم منفعت رو ما متمایز بگیریم اگر در واقع اگر نسبت میان این دو مفهوم رو در واقع آموخاس منوج ندانیم و رابطه اونها رو تبایونی تلقی کنیم مفهوم منفعت مستقل از مفهوم خلاصه منفعت باشه اینو نمیتوان تمام تح تب... خلاصه تحویل برد اما این خب این تحویل درست نیست در واقع بر فرض چون که بر اساس یک فرض نادرست در از حال شاید اصلا اینام طرحش نکنیم بهتره در واقع بر اساس یک فرض نادرست این رو باید محصول کنیم خب بنابراین این پیش نیاز ها پیش فرض ما کمک میکنه این پیش فرض جز تحلیل محتوایی است که آها این مفهوم مثلت و مفهد متمای زن خب اینجا پس یک کمی مقوله چی داره مطرح میشه؟ نتیجه این که بچه تقدیم رو مای تحلیل عقلی می توانیم بکنیم بر ارساس این پیشفرزا معلوم شد که ما هر مسلحتی رو نمیگیم منفعتم مد نظر نیست که یه جایی خلصه غیر مسلحت حساب میشه اون مسلحت خالص وچه تقدیم رو چگونه و تحلیل کنیم خب میتوانیم برای تقدیم مسلحت دین بر مسلحت نفس تحلیلی عقلی یا عقلی و بگیم و وجود شناسانه خلاصه اراع دهیم تو این مصادیق گذشته اگر یاد باشه خیلی جامعه داشتیم این کارو رو میکردیم ببینیم اقتضای خود این دو مسلاحات چیه خب ما در تغزبنور این ما نمیتوانیم مفهوم مصلحت رو تقلیل بدیم نمیتوانیم این رو تقلیل بدیم مفهوم اصل مصلحت بجاش مف... خلاصه نواد بذاریم به تعبیر دیگه نمیتوان خلاصه مفهوم منفعت رو به جای مفهوم مصلحت قرار داد خب آیا بحث سود و زیان و منفعت کار نداریم چرا؟ در واقع ما برای وزندهی بین دو منفعت هم باید بحث مستقل خودش رو داریم اه اه در واقع بو این که خلاصه یک جاهایی در مواردی نیاز به موازنه در واقع اول مقایسه بعد مقایسه تبدیل موازنه میشه منافع خلاصه باید با یک دیگه مقایسه بشن ما منافع داریم اما منافعی که از مصادیق مصلحت تلقی میشوند میتوانند مشمول این قاعده باشند اما منافع دیگه چی؟ منافع منافع خلاصه بگیم مقصد آمیز میبایست ذیل مفهوم در واقع قواعد مربوط به مقصد خلاصه مقایسه و موازنه شوند پس اگر از زمره مساله اینجا به درد ما میخوره خب بنابراین ما اینجا این نکته رو در نظر داریم که اینجا آیا ما میتوانیم موازنه بکنیم در موازنه مفهوم منفر رو پاش رو وسط بیاریم نه اونی واسه مستقلیست خب اینجا پس ما اگر بخوایم مقایسه بکنیم میشه تحلیل وجود شناسانه تحلیل عقلی خب ما ببینیم الان چه رو باید مقدم کنیم مصلحت دین و مصلحت نفس اینجا ما در رتبه بیستند خب اینجا در واقع مصلحت دین و در واقع مصلحت نقص بر اساس پیش فرض ها گفتیم که خلاصه در یک رتبه لحاظ شدند بر اساس پیش فرض های مربوط به این قاعده ما بحث چی داریم ما اینها در یک رتبه لحاظ شدند بنابراین ما بحثمون را خلاصه در نظر میگیریم لحاظ مصلحت دین و مصلحت نفس در یک رتبه خلاصه پیشفرز ما بود بنابراین خلاصه در نتیجه اینطوری بگیم تفاوت میان اونها تفاوت رتبی نیست هر میتوان برخی از مسادی و اونها رو از دو رتبه متفاوت در نظر گرفت اما اون اما چون این موردی خلاصه از بس خارجم بلکه تفاوت نو در واقع اینجا بگیم صرفا در این مورد در اینجا صرفاً تفاوت نوعی است که میان اونها وجود داره خب در واقع خب اینجا الان ادعای ماست این تفاوت به عنوان یک ادعا مد نظر است خب پس حالا بعد اثباتش بکنیم ببینیم چه اختیزایی داره ما دنبال چی هستیم در این تحلیل ما دنبال این هستیم که ببینیم شاره متعال چه نگاهی داره خب در نگاه شاره متعال جان انسان ها مقدمه یا دین انسان ها در تلقیه در نگاه شاره ما باید این بحث را لحاظ بکنیم در واقع برای تقدیم یک امر حالا امر نگیم بر یک مسلحت بر مسلحت دیگه آنچه که اهمیت داره ترجیح شاره در خلاصه چشم اندازه و چارچوب نگاه دینی و شرعی انسان ها باید چه کار کنن؟ رشد پیدا کنن و صرف وجود انسان ارزش ذاتی نداره از واقع وجود انسان و خلقت انسان ارزش ذاتی نداره به این معنا که صرف خلاصه شاره متعال راضی باشه شاره متعال راضی به وجود انسان در کره خاکی بدون خلاصه حاکمیت ارزش دینی بر انسان رو نداره شاره نیست اه خلاصه اه راضی به صرف وجود انسان نیست خب بنابراین اگر ما بگیم که انسان زندگیش یک زندگی خلاصه داره عرضش مستقل یه حرفی به تعبیر دیگه زندگی انسان ارزش خاصی برای خداوند متعال نداره بلکه در واقع آیه شریفه چی می فرماید؟, می فرماید؟ که من هرچی بر آسمان در زنگ آسمان ها ما خلق کردیم تا چی؟ احسن علیکم احسن و عملا در واقع تدیان انسان تدیان و تأخد انسان به آموزهای دینی است که هدف شاره متعاله در نتیجه این ماهیت دین بر ماهی در واقع بگیم بر صرف وجود انسان خلاصه تقدیم تقدم داره تقدمه به یک معنا بگیم ذاتی داره در نتیجه خلاصه سیانت و تامین موارد مختلف تامین رعایت و سیانت از دین در راستای ارزشی سازی زندگی انسان خواهد بود دو نفر بمیرند اشکال نداره کشته بشن که اونم ارزش داره اما دین حفظ بشه خب بنابراین این اینجا ما می توانیم چی بگیم یک مصلحت یک ارتباتی داره سمصلحت دین می تواند در راستای خدمت به انسان و ارتقای کیفی در زندگی انسان باشه بنابراین خب این ارزشی سازی زندگی انسان به معنا چیه بر اون وجودش تقدم داره به تغییر دیگه مصلحت دین به مصلحت انسان برمیگرده خب. اما ای این سنخ از مصلحت انسان حیثیت سی... حیثیت کیفی دارد و بر صرف سیانت و بگیم بر مصلحت نفس تقدم تقدم داره چرا که دوباره به خلاصه انسان برگشت خلاصه این در تحلیل پس یه تحلیل شد این یه طرف صرف وجود انسانه اون ارزشی نداره اما دین ارزش داره به تعبیر دیگه در مقایسه و موازنه بین دو مخلوق الهی به عنوان دین و انسان ارزش دین ذاتی است و ارزش انسان به خلاصه صرف انسان بودن او نیست بلکه خلاصه خلاص انسان متدین و خلاص اون کسی که ان اکثرکم ان دلقا اون پذیرش تقواس پذیرش تدین انسان متدین است که ارزش دارد از خود یه لوازمی داره ممکن میگم تقدم دین بر انسان مؤمن چی میشه اون یه بحث دیگه میشه خب پس این یه بچ شد خلاصه حد اقل میشه در این میان خلاصه ما حد دو وجه قابل تصویر است یکی این مسلحت در واقع ارزشمندی ذاتی دین و بی ارزشی ذاتی انسان حالا شما نه دفاع از انسان کنید نه اون انسان متدین بود نکته دوم چی ارزشمندی خلاصه غیری دین ارزش غیری دین برای در واقع ارتقای کیفی انسان اون یه ارزش غیری داره در تح... تحلیل قلوس دین ما میونیم مسلحت در خدمت به اینه و به تعبیر دیگه چی داره مسلحت غیری در بگیم مسلحت غیری و مقدماتی دین میتوانه در واقع از طریق در واقع ارزش انسان خلاصه به لحاظ ارزش انسان متدین خلاصه قابل تصویره اینجا میخواه زندگی انسان رو خلاصه ارتقا بده و بنابراین میتوانه یه مقوله قابل پذیرش و قابل تعمل باشه که ما بگیم که دین حفظ مسئله دین برای این تقدم داره نکته دیگه بحث کمیت انسان هاست یک انسان یه مسلحت داره ولی مسلحت دین عمومیت داره عمومیت مسلحت دین در موقع خلاصه مقایسه با مصلحت فرد مصلحت انسان معمولا ناظر به مصلحت در واقع نفس معمولا ناظر به مصلحت بگیم مربوط به یک یا چند انسان لحاظ می شود اما مسلحت دین ناظر به مصلحت تعداد اه... اداد کسیر یا کل انسانها خلاصه در نظر گرفته می شود در نتیجه مسلحت دین از مسادیق عمومی عمومیست به تعبیر دیگه این عنوان دیگه از در واقع تقدیم مصلحت دین از مصادیق قاعده دیگه تلقی میشه در واقع تقدیم مصلحت خلاصه نوعی بر مصلحت شخصی تلقی میشه در نتیجه خلاصه محکن حیث کمی حیثیت کمی در مسلحت دین بسیار پررنگ تر از مصلحت نفس محترم خلاصه خواهد بود نوع به یه نفر برگرده حتی در مواردی که مصلحت نفس شامل مصادیق متعدد متعدده است باز هم مصلحت دین قابل در بگیم با مصلحت دین قابل مقایسه نیست چرا که مصلحت دین ناظر به که تعداد بسیار بیشتر یا بلکه خلاصه ناظر به کل انسان ها خواهد بود اینجا در نتیجه این یه وچه دیگه است بنابراین درسته میگیم مسلحت نفس مسلحت دین یه قالبیه ولی میتونه خودش در واقع مسداق برای قاعده دیگه هم باشه با حیث کمی ما اگر مقایسه کنیم این هم قابل تأمل هست و میتونه لحاظ بشه که مصلحت دین بر مصلحت نفس خب شما اینجا اون مسادیف و پیش های مختلف، های مختلف، مسادی مختلف قل کنید. این یکی دو تا از این وجود عقلی، خلاصه جایگاه خاص خودش شده. بنابراین یه وقت این بود؟ و ارزشمندی ذاتی دین. حالا اونجا ما تعبیر کردیم بی ارزشی ذاتی انسان. خلاصه بگیم حتی اگه بگیم ارزش خلاصه ترجی اینطوری بگیم تر... بیارزشی بی هم اگه نگیم ترجیه ارزشمندی ذاتی دین بر ارزش یا بگیم بی ارزشی یا بگیم بی ارزشی یا ارزش ذاتی و محدود انسان اینجا بر میزان ارزش انسان خلاصه میزان ارزشمندی انسان خلاصه قابل چیه مقایسه این یه وجب بود یه وجه هم برگردونیم به ارزش غیری یعنی اگر مثلت غیری رو لحاظ کنین خلاصه در خدمت انسان خلاصه ترجیحه این بحث و شبیه اون بحث منافعی که ممکنه شما در نظر بگیرید یه منفعت به کل جامعه برمیگرده یه منفعت واحده اما به کل جامعه برمیگرده خب اون میشه حیث اون عمومیت مسلحت اما اگر ارزش غیری دید رو بگیریم در واقع ترجیح خلاصه به تعبیر دیگه بگیم در نتیجه ترجیح مصلحت نفس مصلحت دین به مصلحت به مصلحت نفس باز میگرده ممکنه به این نفس در نگرده این ترجیح مصلحت دین در مجموع به مصلحت مجموع نفوس باز میگرده. هر چند در ظاهر به مصلحت یا به تعبیر درستتر به منفعت غیر مصلحت آمیز مصلحت آمیز یک فرد باز نگرده. اون قابل تحمل هست. یک نگاه کلانه. در این مورد نوعی نگاه کلان میتوانه در واقع توجیه کننده ترجیح مسلحت دین بر مصلحت نفس باشه خب این نگاه کلان سرایت مصلحت دین به نفوس رو به مجموعه نفوس یا به مجموع یا آهاد نفوس رو لحاظ کرده است و این این محدودیت رو ما داریم که حالا سه نفس محدوده اما مثلت دین نمحدوده این در واقع ویژگی در مثلت دین باعث میشه که در واقع جنبه حیث حیث سرایت کنندگی مسلحت دین زمین ساز توسعه مسلحت در تحقق خلاصه اینی باشه بنابراین این نگاه, نگاه خلاصه خاصیه که هم کمک کرد که ما اون جنبه ارزش ذاتی رو ببینیم ماهیت دین یه تقدم ذاتی داره انسان متدین که ارزش منده ولی اون حس غیری هم اضافه میشه بلکه مسئله دین به خلاصه افراد بیشتری برمیگرده این وجویی که اینجا میتوانه باشه ولو این که خلاص دلیه مستاق اینجا شما اون رو نتوانید پیدا کنید بنابرای حداقل چند بچ رو ما اینجا میتوانیم برای ترجیح مسلحت دین بر مسلحت نفس ردیابی کنیم عدلی خواستان من به ارحال موردانی شریفی که تعدیم مسلحت از داره اون خاص خودشون رو دارن ولی اگر ما این مغادر رو لحاظ بکنیم می توانیم یه مقداریم زخت یا قوبت مستقل رو برای خودش برای استردال به هر مقام الحمدلله رفت